كان يتغدى نهار میخورد كنا وحدنا تنها بودیم كان بخيل يتغدى على الكباب مع زوجته فقال یا لیتنا كنا وحدنا قالت زوجته لا يوجد هنا أحد غيرنا فقال انا أكلم الكباب خسیسی با همسرش در حال خوردن كباب در وعده نهار بودند مرد گفت ای کاش تنها بودیم همسرش گفت اینجا به جز ما کسی نیست مرد گفت دارم با کباب حرف میزنم